بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوند بی اندازه نهایت باره حامیم نزول این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت مونی و با حکمت صورت گرفته است آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست جز به حق و برای مدت معینی نیافریدیم ولی کافران از آنچی بین بیم داده می شوند التفات نمی کنند و از آن رو گردانند بگو آیا معبودانی را که جز خدا نیایش می کنید چی چیز را در زمین آفریدن؟ اگر چیزی را آفریده باشند به با من نشان دهید. یا برای آنها در آسمانها مشارکتی وجود دارد برای اثبات این ادعا به من کتابی را پیش از این قرآن نشان دهید یا نشانه را از علم ارائه کنید اگر راست می گوید. کیست گمراه تر از آنکه جز خدا و کسی را نیایش می کند که تا روز قیامت او را اجابت نمی نماید و ایشان از نیاهش پیروانشان بیخبرند. و چون مردم شوند با معبودان باطلشان دشمنانشان خواهند بود و از عبادتشان منکر می باشند و چون آیات روشن ما و ایشان خوانده شود آنانی که از حق انکار ورزیده ان، در برابر حقی که برای آنها آمدن می این صحب آشکار است یا می گویند پیامبر آن را افتراک کرده است بگو اگر من اون را افتراک کرده باشم نمی توانید چیزی را از خشم خدا از من بازداری او به با چیزهای بی ضرورتی که درباره من می گویید داناتر است و او به حیث گواه میان ما و شما بسنده است و اوست آمرزنده و مهربان بگو من نمونه نایابی از پیانبران نیستم و نه می دانم که با من چی می شود و نه هم می دانم که با شما چی می شود. من جز چیزی را که به من وحی می شود پیروی نمی کنم من نیستم مگر بیمدهنده آشکار بگو بینگرید اگر قرآن از جانب خداوند باشد که یقینا هست و شما از آن منکر شدید و گواهی از بنی اسرائیل بر اساس کتاب مثل آن تورات بر حقانیت آن گواهی دهد ده و او به آن ایمان آورد و شما از آن با تکبر انکار کنید آیا شما ستمگار نیستید بیگمان خداوند مردم ستمگار را رهیاب نمی سازد کافران با مسلمانان گفتند اگر اسلام خوب می بود ایشان بر ما به سوی آن پیشی نهمی گرفتند و چون به آن رهیاب نشدند به زودی گویند این یک دروغ قدیمی است و پیش از این قرآن کتاب موسی پیشوای بود و مرحمته و اکنون این کتاب تصدیق کننده کتب پیشین است و به زبان عربی نازل شده است تا ستمگاران را بیمده و و بشارتی برای نیکوکاران شود بیگمان آنانی که گفتند پروردگار ما خداست و سپس بر آن پایدار ماندن بر ایشان هیچ ترسی نیست و نه هم ایشان اندوهگین میشوند. ایشان اهل بهشتند در آن جودانه به سر می برند به حیث پاداشی به اعمالی که انجام میدادند. دادند و به انسان توسیه کردیم که با پدر و مادر خیشنی نیکویی کند مادرش او را با ناراحتی در شکم خود برداشت و او را با ناراحتی زایی و دوره حمل و از شیر باز بازگرفتنش سی ماه است تا چون به سن رشد و پختگی خیش رسید و چهل ساله شد گفت ای پروردگار من مرا بر آن دار تا شکران نعمت را که به من و به پدر و مادر من ارزانی کردی با جا آرم و تا چنان عمل صالح انجام دهم ده که به آن خوشنود شوید برای من در دودمانم مردم صالح میان آر من واقعا به تو روی آوردم و من واقعا از مسلمانانم اینها کسانی در زمره بهشتیان که از ایشان بهترین اعمالشان را قبول می کنید و از بدیهایشان در می و عهدی صادقانه ای که به ایشان وعده داده می شد. اما آن که با پدر و مادرش گفت اوف بر شما آیا به من وعده می دهید که روز قیامت از قبر برآورده می شوم در حالی که پیش از من نسلهای های زیادی درگذشتند و هرگز برانگیخته نشدن و ایشان پیوسته از خدا یاری می جویند و با وای می گویند وای بر تو ایمان بیار واقعا که وعده خدا حق است ولی او در جواب می گوید این نیست جز افسانه های ایشان در زمرای همان گروه جن و انسی هستند که پیش از ایشان گذشتند فرمان عذاب بر ایشان صادر شده است ایشان واقعیم زیانکار بودند و برای هر کدام از ایشان مطابق به اعمالی که انجام دادهاند اند درجات شده است و تا پاداش اعمالشان را ایفا کند و به ایشان ستمی نمی شود و روزی که کافران به آتش عرضه می شود و ایشان گفته می شود زندگی دنیوی خیش از چیزهای پاکیزه و دلخواه خیش برخوردار و از آن بهرور شدید اما به نسبت این که در روی زمین بنا حق تکبر می ورزیدید و به نسبت این که با فیس آغشته بودید امروز به عذاب احانت آمیز مجازات می شود. داستان هود برادر عاد را بیادار زمانی که قومش را در سرزمین احقاف بیم داد در حالی که بیم دهندگانی ده پیش از او و بعد از او گذشتند و اینکه جز خدا را نپرستید واقعا من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسن. گفتند آیا نزد ما آمده ای که ما را از خدایان ما بازدادی پس اگر راست می همان چیزی را که به ما وعده می دهی بیاور. خود گفت بگمان علم آن تنها و نزده خداوند است و من با شما چیزی را که به آن فرستاده شده ام ابلاغ می دارم ولی من شما را قومی می بینم که جهالت می وزید. سپس چون آن عذاب را به شکل ابری گسترده دیدن که با وادی هایشان در حرکت است، گفتند: این ابر است که برای ما باران می آورد نه خیر بلکه این همان چیزی است که با شتاب زدگی آن را خواستید تون بادیست که در آن در دردناک است که همه چیز را به حکم پروردگار خیش نبود می کند پس به حالتی در آمدند که جز مسکنهایشان چیزی دیگری دیدن نمی شد به این ترتیب گروه مجرمان را جزا می ده. و بیگمان ما ایشان را در چنان مکنت یعنی توانایی و قدرتی قرار داده بودیم که شما را در آن مکنت قرار ندادیم و با ایشان شنوایی، بینایی و دلهای اندیشمندی دادیم ولی از ایشان شنواییشان، بیناییشان و عقلشان هیچ چیزی از عذاب خدا را دفع نکرد چون از آیات خدا انکار می, کردن و مسخر می کردند و آنچه را مسخره می ایشان را فرو گرفت و بیگمان سرزمین های پیرامون شما را و ایران ساختید و نشانه های گونه، گونه را به معرض مشاهده ایشان قرار دادید تا باشد که برای حق بازگردند. پس چرا آنهای را که جز خدا برای تقرب و حیث معبود گرفته بودند و ایشان یاری ندادند بلکه که این است که از نزدشان ناپدید شدند و این بود نتیجه دروغشان و چیزی که آن را افتراع کرده بودند و هنگامی را که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم تا به قرآن گوش فرادهند چون به این محظر حضور یافتند برخی شان با برخی دیگر گفتند خاموش باشید هنگامی که قرائات تمام شد به سوی قوم خیش در حالی بازگشتند که آنها را هوش دادند گفتند ای قوم ما او آن کتاب را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده است تصدیق کننده کتب است که پیش از آن نازل شده است و به سوی حق و به سوی راه راست هدایت می کند ای قوم ما این دعوتگر خدا را اجابت کنید و به او ایمان آرید تا خداوند برای شما از گناهان شما بیامرزد و شما را از عذاب در ناگ پناه دهد و کسی که دعوتگر خدا را اجابت نکند پس در زمین عاجز کننده نیست یعنی از عذاب خدا پناهگاهی در زمین نمی یابد و برای او جز خدا یا رویاوری نیست اینها در گمراهی آشکاری هستند آیا ندیدند خدایی که آسمانها و زمین را فرید و به آفرینیش اینها ماندن نشد میتواند که مردگان را زنده کند آری بگمان او بر همه چیز تواناست و روزی که کافران به آتش عرضه می شوند از آنها پرسیده می شود آیا این حق نیست؟ می گویند آری و به پروردگاری ما سوگند که حق است می گوید پس به سببی که کافر بودید عذاب را بچهد بنابراین صبر کن توری که همه پیامبران اولو العظم شکیبایی ورزیدند. و به عذاب آنها شتاب مکن و روزی که آنچه را از عذاب با ایشان و, و ایشان وعده شده ببینند برایشان برای که جز ساعتی از یک روز را درنگ نکرده اند این است. پس آیا جز مردم فاسق هلاک ساخته می